شامس، دمشق، 644 پیدایم کرد سلطان ولد. ده ماه بود که به دمشق آمده بودم. زیر آسمانی آبی و شفاف با کشیشی به اسم فرانسیس شطرنج بازی می کردی. فرانسیس آدمی بود که ساز درونش به این سادگیها ناساز نمیشد. آرامش پس از تسلیم شدن را می شناخت و همه جانداران را به یک چشم میدید. به نظرم خیلی مسلمانتر از کسانی بود که اسم خودشان را گذاشتند مسلمان اما نمیدانند اسلام یعنی چه. و حتی احتیاجی نمی بینند در این باره فکر کنند. قاعده سی و چهارم. تسلیم شدن در برابر حق نه ضعف است نه انفعال. برعکس چون این تسلیم شدنی قوی شدن است به حد اعلا. انسان تسلیم شده سرگردانی در میان موجها و گردابها را رها می کند و در سرزمینی امن زندگی می کند. روی صفحه شطرنج چند مهره باقی مانده بود. وزیرم را حرکت دادم تا شاه فرانسیس را کیش بدهم. او هم با حرکتی جسورانه رخش را جلو آورد. حسی درونی به من می گفت این بازی را می بازم. همان موقعی که این فکر از ذهنم میگذشت سرم را بلند کردم و با سلطان ولد چشم در چشم شدم. گفتم چه خوب است که بار دیگر بار چشم سر می بینمد. پس بالاخره تصمیم گرفتی دنبالم بگردی. خجالت زده لبخند زد بعد خودش را جمع جور کرد تعجب کرده بود از اینکه متوجه کشمکش درونیش شدم اما چون مردی با شرف و راستگو بود حقیقت را انکار نکرد گفت: بله به جای اینکه دنبال تو بگردم مدتی این آنور گشتم. میخواستم پدرم را فریب بدهم اما پشیمان شدم نمیتوانستم به پدرم دروغ بگویم سرانجام به دمشق آمدم همه سوراخ ها را گشتم اما پیدایت نکردم چرا خودت را از من مخفی می‌کردی گفتم تو هم مردی درستکار دلنازک و خوش و هم فرزندی خوب روزی رفیق خوبی برای پدرت می شوی سلطان ولد سرش را با اندوه تکان داد گفت او به تنها رفیقی که احتیاج دارد تو هستی شمس با من به قونیه بیا پدرم خیلی دلش برایت تنگ شده به محض شنیدن این دعوت هزار و یک فکر از سرم گذشت. نفسی که مدتها بود درونم به خواب رفته بود، یک دفعه بیدار شد و امر کرد نباید به جایی برگردم که چشم دیدنم را ندارم. مبادا به حرف سلطان ولد گوش کنی. تو وزیفت را انجام داده ای. لازم نیست به قونیه برگردی. حرف بابا زمان را فراموش نکن راه از این به بعد خطرناک است اگر بروی دیگر نمی توانی برگردی نفس میخواهد زندگی کند مدام بیشتر و بیشتر میخواهد نفس من هم میخواست دنیا را بگردد با آدمهای جدید آشنا بشود و جاهای جدید ببیند علاوه بر این از دمشق خوشم آمده بود. می توانستم زمستان بعدی راحت توی این شهر اقامت بکنم. اینکه آدم تا به جایی عادت کرد فوراً راه بیفتد و به جایی دیگر برود، نوعی حس تنهایی ترسناک به وجود می آورد. خیلی خوب میدانستم که دلم در قونیه مانده. دلم برای مولانا چنان تنگ شده بود که حتی یاداوری اسمش جگرم را می سوزاند. وقتی او در کنارم نیست دیگر چه اهمیتی دارد در کدام شهر باشم. او هر جا باشد قبله هم همانجاست. به طرف صفحه شطرنج برگشتم. شاهم را یک خانه به پیش بردم. چشمهای فرانسیس گرد شد. فهمیده بود دانسته به طرف باخت میروم. زندگی هم مثل شطرنج است. بعضی حرکتها را برای بردن انجام می دهی، بعضی حرکتها را هم برای اینکه جریان بازی ضروریشان کرده، برای اینکه صحیحند و میبازی. سلطان ولد گفت، خواهش می کنم با من بیا، حتی آنهایی که پشت سرت حرف میزدند و با تو بدرفتاری می میکردند مثل سک پشیمان شدند. قول میدهم اینبار این بار همه چیز رو می شود. میخواستم بگویم فرزند، نمی توانی همچه قولهایی بدهی کسی نمیتواند چنین تعهدی بدهد اما جلو زبانم را گرفتم آرام سرم را تکان دادم و گفتم یک بار دیگر قروب قونیه را ببینیم فردا صبح زود به راه می‌افتیم سلطان ولد انگار خیالش آسوده شده باشد لبخند زد گفت خیلی عالی شد خیلی متشکرم. زنده باشی، نمیدانی پدرم چقدر خوشحال می شود. به طرف فرانسیس برگشتم. او هم صبورانه منتظر بود دوباره به صفحه بازی نگاه کنم. وقتی فهمید دوباره حواسم به اوست، ابروهایش را بلند کرد و با حالتی پیروزمند گفت، دقت کن دوست من، 听说吗